سلام و سلام به شنونده های عزیز کانال هزار افزان امیدوارم حالتون خوب باشه با شما هستم با یک داستان دیگه داستان این قسمت هست هر دو قاشوق مال تو باشه در روزگاران قدیم پسر خیلی خصیصی بود این پسر میخواست زن بگیره به خواستگاری هر دختری که میرفت میگفت من زنی میخوام که غذا نخوره برای همین هیچ دختری حاضر نبود به عقدمون در بیاد تا اینکه روزی دختر زرنگی با شنیدن این شرط قبول میکنه که زن اون بشه پسر گفت تو که شرط منو میدونی نباید نوم بخوری اگه روزی ببینم که غذا میخوری حتما میمیرم دختر گفت باشه من هیچ و غذا نمیخورم خدا با این شرط با هم ازدواج میکنم کاری این مرد کشاورزی بود. هر روز که می رفت سر زمین، زن به کارهای خونه می رسید و قضا درست می کرد. و قبل از اومدن شوهر، قضاشو می خورد، زرف رو می شد. وقتی هم که مرد به خونه می اومد زن یک کاسه آش به شوهرش می داد. خلاصه چند سالی می گذره و خدا اونو بچه ای می ده. بچه هم دو سه ساله می شه. یه روز طبق معمول زن قبل از اومدن مرد یه آش می و تا کاسه ای می میریزه و دو تا قاشق میذاره توش. تا با بچهش مه هم بخوره. از قضای روزگار اون روز شوهرش کمی زودتر به خونه میاد وقتی چشمش به کاسه و آشوگا آشوگ افتاد شستش با خبر میشه که موضوع از چه قراره به زن گفت این آشوگا مال کیه؟ زن گفت یکیش مال منه یکیشم مال تو مرد گفت زن میدونی چه داری میگی؟ من میمیرم ها؟ زن گفت مرد عاقل باش. تا حالا کدوم بنده خدای قضا نخورده که من نخورم دیدی که چند سال قضا میخورم و تو هم هیچ چیزی رو از دست ندادی و نمردی حالا میخوای بمیری بیا و این شرط رو فراموش کن مرد گفت نه الا بلا من میمیرم اینو گفت و به اتاق رفت و در گوشه دراز کشید و گفت من مردم و به این ترتیب خودشو به مردن زد زن هرچی به سر و صورتش زد و گریه و زاری کرد و گفت ای مرد با از خر شیطون بیا پایین نگه غذا نمیخورم غلط کردم پایده نداشت که نداشت مرد میخواست از اون زهر چشم میگیره به و به حرف قولی که داده بوده سر اون قول بمونه با سر و صدای زن اهالی ده جمع شدن تا ترتیب کفن و دفنش رو بدن مرد رو به مردش رو خونه بردن چون شب شده بود قرار شد که روز بد بیان و مرده رو بشورن و به خاک بسپرن کفن سفیدی روش میکشن و مردش رو خونه رو ترک میکنن شب که میشه و تا جا همه جاره میگیره مرد با هزار ترس و لرز با هر زحمت و بدبختی که بود در مردش رو خونه رو باز میکنه و کفن سفید رو به دور خودش میپیچه و دوان دوان به طرف خونه ط وقتی به خونه میرسه در میزنه زن میگه کیه؟ گفت منم در رو باز کن زن گفت تو که مرده بودی برو همونجا که بودی مرد گفت زن تو رو به خدا در رو باز کن به خدا اینجاشو دیگه نخونده بودم از این به بعد هر چقدر میخوای قضا بخور اصلا هر دو تا قاشق مال تو باشه زن که میبینه مرد از کارش پشیمون شده و فهمیده که این شرط شرط نیستش که اصلا قابل اجرا باشه و هیچ آدمی بدون غذا بتونه زندگی کنه در رو باز میکنه و اونها به زندگی طبیعی معمولی برمیگردن. خب دوستان عزیز این داستان رو شنیدید امیدوارم که خوشتون اومده باشه ممنونم که منو تا آخر همراهی کردیم تا داستان بعدی خدا نگهدار